سحیفه معرفت شرح دعای هفته هم سحیفه سجادیه توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی جلسه یازدهم اسم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا و نبینا و آله تیبین الطاهرین المعصومین <تصفح> لا ما بقيت الله فل دعای 17 در صحیفه سجادیه خطر شیطان در نفوذی که به دل و جان و نفس ما انسانها میتواند دشته باشد تذکر داده میشود و دو نکته رو در عبارات مختلف این دعا در رابطه خلق با خالق عنوان توجه داشتن و مدد جستن به ما آموزش می دهن. یک نکته نزغات شیطان وسوسه شیطان حیله و نیرنگ و فریبه که شیطان در پیش می گیرد تا ما انسونه ها را آلود سازد تذکر می دهد که این رو دست کم نگیریم نکته دوم چه بکنیم که در مقابل این خطرات قدرت ایستادگی پیدا کنیم و بتوانیم الله شیطان رو از خود دور کنیم عباراتی که حضرت فرمودن فرازهایی از اون خونده شد تا به اینجا رسیدیم اللهم صلی علی محمد و آله وشغله انا به بعض اعدائک که در جلسه گذشته این قسمت به پایان آمد ادامه اون واسمنا منه به حسن رعایتک و اسمنا خدایا ما را محفوظ بدار ما را نگه دار اسمت مسونیت و نگهداری رو میگن الان مثلا فرض بفرمایید که ما در یک فضایی قرار میگیریم که در این فضا مثلا خطر باران خطر سیل خطر درندگان یا هر چیزی هست میگم آیا من مطمئن باشم در این فضایی که ما قرار گرفتیم محفوظ میمانیم؟ ممکنه کسی بگه بله من در خونه رو به گونه ای بستم که هیچکه از این خطرات این قسمت رو تهدید نمیکنه. پس عامل مسونیت ما میشود مثلا این خانه یا این صد یا این دیوار یا این نرده یا هر چیز دیگر. همون گونه که در مقابل خطرات جسمی مادی عوامل جسمی و مادی تاثیر داره در مقابل خطرات معنوی و روانی و روحی هم عوامل مسئولیت روحی و روانی مطرح میشه خب شیطان دشمن روحی و معنوی ماست با توجه به بحثایی که گذشت میخواد ما رو آلوده کنه آیا ما در مقابل این دشمن مسونیت و محفوظ موندن برامون باید مطرح باشه یا نه؟ امام علیه السلام در غالب دعا چنین بیان میکنن خدایا از تو میخوام و ما رو نگه داری ما رو محفوظ بداری منهو از او از او یعنی شیطان منظور خطرات شیطان وسوسه های شیطان نزغات شیطان خب ما رو نگه داری از اون خطراتش ما رو محفوظ کنی در مسونیت قرار بدی از نقشه شیطانی به وسیله چی؟ به حسن رعایتک با اون نیکی و حسن و زیبایی و خوبی و بهین سرپرستی کردنت. ببینید اول عبارت برای ما معلوم بشه بعد یه مقداری توی این متن باید با همدیگه بحث کنیم ما یه حدیثی داریم از شخص نبی اکرم که همگی با این حدیث آشناییم کلکم راعه و کلکم مسئول ان رعیته همه شما نسبت به مردم مسئولیت دارید مثل مسئولیتی که یک چوپان نسبت به گوسفندان داره کلمه یا را اگر بخوایم یک کمی دقیق بشیم همون نقشی که یک چوپان نسبت به گوزفندان داره اینا رو حفظ کنه محافظت کنه جایی که تغذیه خوب براشون میتونه باشه ببره اگر گرگ در معرض این گوزفندانست گرگ رو دور کنه گوسفندارو رو محافظت کنه میگه شماها نسبت به هم دیگه باید این حالت رو داشته باشید رآهو در لغت گفته ای حفظهو رآهو یعنی محافظتش کنه، یعنی حفظش کنی یعنی نگهش داره خب به حسن رعایتک خدایا تو رای تو رعایت میکنی یعنی تو محافظت میکنی تو پناه میدی تو ما رو از دست برد عواملی که میخواهد خطر برای ما ایجاد کند، نگهداری و محافظت می اما یک کلمه حسن رعایت بحث دومینه که یعنی این رعایت باز مثل عبارات قبلی که توضیح دادم یعنی یه حالت جبری دارد که با روال کلی بینش دینی سازگاری نداره یا چیه که حالا عرض خواهم کرد. ما رعایت رو معنی کردیم محافظت کردن در کنف حمایت خود گرفتن و او رو از دست برد حوادث در امان داشتنه اما حسن رعایت همین میتونه به شکلهای مختلفی باشه اون شکل خیلی عالی رعایت کردن اگر در مقام تشبیه بخوام ارز کنم از باب این که در مثل مناقشه نیست میگویم وگرنه اینها با هم قابل مقایسه نیست مثلا اگر یک چوپانی داره گوزفنده رو محافظت میکنه چوپان دیگری بهتر محافظت میکنه اون میشه حسن رعایت یا همین چوپان رعایتش گاهی مثلا در یه حد فرض کنید معمولیه گاهی در یک حد خیلی بالاتر و دقیقتر رعایت کردن این میشه حسن رعایت میگیم خدایا با حسن رعایتت حالا سوال میشه مگر خداوند رعایتش غیر حسن هم میتونه باشه ثانیاً مگر رعایت کردن خداوند از ما به شکل جبریه خداوند به اجبار ما رو محافظت کنه خیلی خوبم محافظت کنه شیطان رو راه نده مثل اینکه در اسمت انبیا و اولیاء یه نکته اختلافی بین ما شیعان و غیر شیعان وجود داره برخی از فرق اسلامی میگن اگر پیغمبر معصوم است به این دلیل است که خداوند قدرت گناه را از پیغمبر میگیرد ما شیعه این رو قبول نداریم اگه این باشه که جبره خب اگر خداوند قدرت گناه رو از منم بگیره منم میشم معصوم یا بعضی میگن قدرت گناه داره اون لحظه ای که میخواد گناه کنه ملکی فرشته ای میاد نمیگذاره اینا ما قبول نداریم خب اگر اینجوری باشه باز هم جبر میشه نه ما میگیم پیغمبر قدرت گناه دارد ولی خود کاری کرده زحماتی میکشد که امداد خدا هم شامل حالش میشه که گناه نکنه باید خودش کاری بکنه از گناه باز بماند اگر فرض کنید یک کور مادرزاد بگه من تا کنون نامحرم ندیدم این که امتیازی نیست به این شعر سعدی برخی خورده گرفتن من آن مورم که در پایم بماند. نه زنبورم که از نیشم بنالند چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم اهل فن میگن اگر زور مردم آزاری نداشته باشم امتیاز نیست در واقع باید شعر سعدی این گونه باشد نه آن مورم که در پایم بمالند نه زنبورم که از نیشم بنالند چگونه شکر این نعمت گذارم که دارم زور و آزاری ندارم؟ اگر زور داشتم و آزار نداشتم این میشه انسان لذا اسمت پیغمبر، اسمت امام علیه مسلام در اثر اینه میتونن گناه کنن ولی اونقدر خدا رو دوست دارن، اونقدر آبدن اونقدر به خدا اعتقاد پیدا کردند و اونقدر در این راستا جلو رفتن که زمینه گناه رو در خودشون کنار زدن حالا اگر ما میگیم واسمنا خدایا ما را محفوظ بدار ما رو در مسونیت قرار بده منه نسبت به شیطان به حسن را یعنی مثل اون فرشته بذار نظر ما گناه کنیم یعنی خدا یا قدرت گناه را از درون ما بگی دیگه ما میل به گناه نداشته باشیم قطعا معناش این نیست. رعایت پروردگار سرپرستی کردن، مباظبت کردن دو جوره. یک محافظت و سرپرستی جبری گر نگهدار منان است که من دانم شیشه را در بغل سنگ نگاه میدارد. اینو ما چه بخوایم چه نخوایم لذا در طول زندگی ما به خصوص در اصل موجودیت ما واقعا ما خیال میکنیم مثلا یه بچهی که از مادر به دنیا میاد تا به سن هفتاد اشتاد سالگی رسیده باشه اگر خدا نخواد محافظت کنه این همه خطراتی که در مسیر انسان قرار گرفته هر کدوم اونها است که انسان رو نابود کنه ولی داره محافظت میکنه اینا یه مقوله دیگریه ما قبول داریم گفت شب تاریک و رهباریک و من مست قده از دست من افتاد و نشکست نگهدارنده اش نیکو نگهداش وگرنه صد قده نفتاده بشکست اگه او نمیخواست محافظت کنه ما به این قدرت های خودمون باید تکیه کنیم این که صد درصد غلط است و معلوم اما در بحث عمل در بحث حرکت و رفتار انسانی یه نکته بسیار است که اینو درخواست دارم دقت کنید من از قرآن کریم سوژه بگیرم در آیه 257 سوره بقره آیه آیت الکرسی الله ولی لذین آمنو سوال خدا ولی فقط اونایی که ایمان آورده هست یا خدا ولی همه هست اگر از نظر قدرت ولایت حساب کنیم خداوند ولی همه است هیچ موجودی از تحت سلطه ولایت حضرت حق نمیتونه خارج بشه پس این قیدی که گذاشته الله ولی الذین امنوا یعنی چی از آیات دیگه قرآن استفاده کنم خداوند معیت قیومیه خود را وقتی بیان میدارد میفرماید هو اینما کنتون هر جا شما باشید خدا با شماست معکم این کم عامه شما هر جا باشید خدا هست اما در جای دیگه میگه ان الله مع المحسنین این معیت با معیت اولی فرق داره اگر ان الله مع المحسنین مع الصابرین پس کسی محسن نباشه خدا با او نیست کسی صابر نباشه خدا با او نیست همینطور در این آیه الله ولیی لذین آمنو کسی که مؤمن است خدا ولی اوست پس اگر کسی مؤمن نبود خدا ولی او نیست این منظور چیه در معیت اولیه که معیت قیومیه است اشاره به این است که خداوند از نظر سلطه و قدرت و عظمت بر همه موجودات سلطه داره اما اونجا ان الله مع المحسنین اگر انسان ها محسن شوند یعنی گامی در مسیر عرضش ها بردارن خداوند توجهشون رو متوجه اونها میکنه به اونها انایت خاص میکنه این معیت خاصی میشود از باب الطاف الهی الله و ولی یا لزین آمنو کسانی ایمان بیاورن حرکت اولیه رو انجام بدن خداوند ولایتین ها رو میپذیره اجازه بدید مثال ارز کنم ما مثلا وارد یک کلاسی میشویم معلمی برای ما قرار داده میگیم معلم همه این شاگردان است او به عنوان معلمی همه رو با یه چشم نگاه میکنه وارد کلاس میشه درسشو میده راهنمایی میکنه ارشاد میکنه این بلا تشبیه مثل معیت قیومی است بلا تشبیه مثل ولایت عامه حضرت حق بلا تشبیه مثل رحمت رحمانیه پروردگاره که این همه رو در بر میگیره اما اگر در این کلاس یه شاگردی علاقه بیشتری نشون داد زنگ خورد معلم از کلاس رفت بیرون دنبال معلم حرکت کرد اومد میگه استاد یه سآله دیگه دارم استاد دلم میخواد بیشتر کار کنم میشه یه کتابم به من معرفی کنید در این زمینه بیشتر کار کنم اینجا معلم با این شاگرد میشود که با بقیه نیست این مثل الله که این المحسنین یا الله ولی و لذین پس اینجا به این فرد به صورت اختصاصی توجه کرده که بقیه نکرده چون بقیه نخواستن او خواسته لذا خداوندی که در قرآن یه جا می فرماید و رحمتی وسعت کل شهی رحمت من اونقدر وسیعه همه چیزو در بر میگیره اما همین خداوند در قرآن میفرماید یختس برحمته من یشا اختصاص میدهت رحمتش را به یه عده خاصی که میخواهد پس رحمتشو به همه نمیده این رحمت خاصه مثل همون مثالی که ارز کردم لذا اگر در آیه 257 سوره بقره آمده الله و ولی الذين امنوا اون ولایت خاصه یا در آل امران آیه 68 ولی خداوند ولی مؤمنینه یعنی اگه شما ایمان آوردید خدای ولایت خاصی رو برای شما خواهد داشت یا در سوره اعراف آیه 196 وقتی داره از زبان پیغمبر خدا رو به مردم معرفی میکنه و این رابطه ولایتی رو میشناسانه ان نه ولی الله الذی نزل الكتاب و هوا یتولی سالحین ولی من خداست همون خدایی که کتاب رو نازل کرد و هوا اون خدا یتولی سالحین ولایت صالحین رو به اهده می گیره پس کسی صالح نباشه این ولایت رو خدا در حق او نخواهد داشت شما ببینید اگر به یه معلمی که به درد بخوره برسید هی میگید تو رو خدا به من بگو راه شما می وقتی میخواید او هم کمک میکنه اون کمکی که او به شما میکنه به بقیه نمیکنه یخدست رو به رحمتی من یشا ولی شما خواستید امام سجاد علیه السلام داره اینجا به ما این یاد میده از خدا بخواید شما را از شر شیطان حبس کنه ببینید این که در آیه قرآنم اومده قبلن براتون بحث کردم اول دعای همین هیده هم صحیفه آمد اللهم انا نعوزو بکن خدایا به تو پناه میبرم من نزغات شیطان بلا تشبیح آقا بنده توی بیابونه گیر کردم هم ندارم گرگم داره به من حمله میکنه. پنج متری من بیس متری من پنجامتری من کسیست اسلحه داره شکارچی قویی هم هست حاضر نیستم به او پناه ببرم خب طبیعیست گرگ منو می داره. اگر من به او پناه ببرم او تفنگ داره و تیراندازی میکنه گرک فرار میکنه ولی پناه بردن به او دست به منه لذا من باید کاری بکنم که در تمام شعون زندگی توجهی به خدا داشته باشم اینکه میگه خدایا از تو میخوام خدایا تو منو محفوظ بدار این تنبلی نیست این جبر نیست که در جلسه قبلم توضیح دادم بگه خداوند که جبر قرار نداده خدا اختیار داده برو خودت یکی از اون اختیاراتی که مسادیق اختیاری که خدا به من داده یا نحوی به کار بردن اختیاری که خدا به من داده اینه بدونم پناگاه اصلی خداست لذا به او پناهنده بشم لذا به او میگم ای خدا تو منو محافظت کن تو منو در سیر سایه قدرت رعایتی خودت قرار بده من به تو پناهنده میشم یعنی میفهمم تو رو احتیاج دارم با از تو کمک بگیرم باید بیام به طرف تو برخی اهل دل تشبیه خوبی در این گونه موارد دارن میگن مثلا فرض کنید بچه ای که هنوز خوب بد رو تمیز نمیده دو سه سالش توی یک شهر شلوغ و خطرناک پدر و مادر دست بچه رو گرفتن حرکت میکنن بچه به اقتضای میزان درک و فهم خود و عدم تجربه و گاهی هم استقلال طلبی غیر واقعی. چون استقلال طلبی واقعی خوبه اما استقلال طلبی غیر واقعی خب بچه سه ساله نمیتونه رو پا خودش واسه باید بدونه که مستقل نیست و نیازمند تکیه بر پدر مادره حالا هی دست پدر مادر رو رها کنه پدر و مادر میگن بذار دستو نگه داریم خطرناکه نه پذیر رها کنه گم بشه، دوزده بیان ببرنش بلاها سرش بیارن حالا به حدی رسید، به سن می رسید حقیقت رو فهمید پدر مادرم پیدا کرد این دفعه وابستگیشو چجوری؟ هی ممکنه بگه دست من رو نگه دارید که منو نبرن مبازه به من باشید که من احتیاج به شما دارم انسان باید به فرموده امام سجاد در این دعا این معنا را بفهمد، دزد می شیطان در کمینه ما احتیاج به کمک خدا داریم ما باید ولایت خدا رو بپذیریم باید رعایت خدا رو بپذیریم لذا داره دعا میکنه خدایا از تو میخوام و اسم نامنه و به حسن رعایتک ای خدا تو ما رو محفوظ بدار با اون خوبی و بهترین شکلی که محافظت میکنی وقتی در کنف حمایت تو اومدم و دعای من مستجاب شد تو منو قبول کردی مثل شاگردی که به معلم میگه بپذیر یک حرفای دیگه ای هم که سر کلاس به بقیه نگفتی به من بگو بگه خب به جایی رسیده که دیگه حالا در امان میمانه در ادامه این مطلب وکفنا خطرهو خطر به معنی خدیعه مکر و نیرنگ و فریب میتونه باشه وکفنا تو کفایت کن ما رو تو ما رو در محافظت که گرفتی اینجوری در کنف حمایت خودت قرار بده که خطر شیطان دو دونخته خدیعه شیطان در ما تاثیر نکنه یعنی تو دفت کن این دست هم به همین معنی میشه یعنی وقتی به تو پناه بردم و مکرو و مکر الله والله خیر الماکرین خدا این دست رو رو میکنه و اینها رو آشکار میسازه این توضیح بیشترش انشاءالله به جلسه بد مکول میشه و السلام علیکم